جلسه نشست صبي کودک بکه، گریه کرد دعو رهایش کن يبرد سرد می شود جلس صبي مع قوم يأكلون فبدأ يبكي قالو لك تبكي قال الطعام حار قالو دعه حتی یبرد. قال انتم لا تدعونه نزد ايدين نشست که مشغول غذا خوردن بودند کودک شروع کرد به گریه کردن بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت غذا داغه بهش گفتن بزار سرد بشه گفت آخه شما نمیذارید